ای خورشید تابان اسلام اسلام اسلام ای خورشید تابان افشان نور ایمان بر قلب مسلمان بر قلب مسلمان اسلام اسلام اسلام ای خورشید تابان اسلام اسلام اسلام ای خورشید تابان افشان نور ایمان بر قلب مسلمان بر قلب موسلمان. برادران و خواهران مسلمان مرکز نشراتی الصادقین، هر نوه قارین و موعظه های جهادی را برای شما تقدیم می نماید وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبه ورسوله في ذا هو أبي ونفسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فان الله الله سبيح ذا بيراموني وغلاء وبراء فكرميك المشاهد سباتاي خالي جارش فباسا بعد از عملی سلیبیا تقریبا سال عفتم میشه داخلشیم. تقریبا سال سال عفتم است. در سال 66 یافتم عفتم با سرمی عملی. تعبیه است. امرات سلیبی تقریبا دیر زمان از که داماد داره. اما تعبیه اشکارش کارش فرق میکنه. اونا تقریبا سه سه پنجاه سال بیش وقتی وکشورای اسلامی عمل کردن و عملی سه پنجاه سال کبیش بود. بنا توصیه وسفرشی لوئین و هم بود. در جنگای سلیبی زمان سلادین ایوبی رحمه الله تقریبا دو قرن طول میکشه جنگای سلیبی و سلیبیا با شکست خیلی فاهیش مواجه میشند در کشورهای اسلامی وقتی کل وین نام دستگیر میشه و منصوره در مصر در خاطرات خودی نوشتم میکنه که توصیه و توصیر باز سلیبیات تنظیم کردن در کشورهای اسلامی. ویت تذکر میداد اینجکی خوش نوشتم میکنه برادر داشتهش که, که باقی مانده ما در در که درخ دربانی خانه بذباز بانی خانه رهاش توسط مسلمانان. ویت تذکر میداد که که دو قرمشه که ما تاقتاز میکنیم به کشورای اسلامی اما اما تاقتازا غیر مفید بود تقریبا فلسطین بیش از نوات سال در نزد در, در دست ما قرار داشت و از دست ما سقوط کرد رفت کشورای مسلمی مناطق شام لبنان فلسطین تا و باقشای وردون سوریا بعض مناطق در مصر این هم از کشورا ما چی شدیم پس دوباره باقب نشینی مجبور شدیم ای باید تأکید میکرد که سر قبیلشی نیم آتشی است، سر شکست فعالش مادریمان نتخت است در مواجهه با مسلمانان دو کار نمکامل. همه ی اروپا را چک کردند، همه ی اروپا در جنگ شام میل بود، همه ی اروپا فتواهایی که در فرانسه دادند نظر به میفتوات، شما ی جنگ جنگی مقدس است، فتوا می بود، دار فنی فتوا می فتوات. مجلس کلیسا در آن جا وقتی که جمع در مجموعه کلیجها ی فتوات صادر کردند که مسلمانان کس نیامدند و و ما مردم مقدس و جنگ مردم مقدس است. و هر سلیبی را بریشیم که دارن اسکار سلیبی را بریش، بریش تزریق. ولی که که تزریق کنن در در مغزش. که تو میری با خاطر یک جنگ مقدس است. و باید امت سلیبی را از امت ملعون باید نجات دید. باین طوسین، این مقصر از امت چیبرد؟ امت اسلامی امت رسول الله علیه و سلم. حتی لب زلاین استعمال میکردند دریچه. وقتی که لونوام بندی میشه. میگه سر چی سر شکست؟ طبیی لار شوار امطرراتر وقت د شکست میخوره کوشش به میکنه که شکست اممی است که انسان با باید درس از شکست به باید چی باید کرد او به این می رسه که ما بزرگترین ما ماهی است که مسلمان هامانتنستیم از نگاهی فکری شکست بیم سر بود امیشه بعد داشته باشین بر که ای او تقریبا ابار دوم است از که ما زیر عملات سلیبی قرار میگیریم. در خبار سی مکملات نظامی شروع شده در بار اول شما هیت مسلمان را مشاهده نمی کردین که از غربی متاثر شده باشد هیچ اطلاقا شما در که شما تمام معرخی ندار که مثل ابن الاسیر ابن که ترحیم تاریخ کتب تاریخ نوشته کردن هیچ مسلمان را پیدا نمی کردین که در دو قرن از فرحنگ غربی متاثر شده باشد هیچ شما پیدا نمی کرد و یه سر چی است سرمی ایمانی بود. ولاته ولا ان ولته حزن وانتم الاعلون كنتم مؤمنين اي انتم الاعلون کیست در بیمه کیست هر مسلمان احساس چی داشته احساس برتری علومه کرد. نه برتری که در کی دناز غربي او دناز مردمو فساق او فجار است و ولو برتری کی دونکو احساس تکبر نه بل ولو برتری بالای کافر در حالی که در زندان بود در حال کی کشورش اشغال شده بود در حال کی خورش اسیر بود در حال کی همه است بود مادیش همه گیر و بیغما برده بودن صلیبیا اما با هم چی بود احساس استعلامه که رسو سوپرتری میکرد ببینن ما در تاریخ مثال دیگه داریم چنگیزه به کشورای اسلامی سرازیر میشن از مغروسان حرکت میکنن تا بین الجرود تا به فلسطین اشتاد هزار مسلمان در عراق و قاتل میرسنن کشورای اسلامی در همه اموالشون غارت میکنن مستعصم بالله رحم الله بر قاتل در بغداد میرسنن تا بین الجرود سفر میکنن در اونجا در اونجا میخورن خب شما در تاریخ از ادم علی اسلام تا به آیا شما در تاریخ ایره درک دارین که لشکر غالب لشکر غالب دین مغلوبه بو وزیره نه ای خیر در اسلام چه معجزه میآورنه همین تاتاریایی که برای واره کشور اسلامی لیکتن همه گه مسلمان شدن بعد از یک قرن دو این سر در کجا بود سر برادران دای بود که مسلماناک بو یک از نگاه مادی شکست خورده بودن اما بزرگترین چیزی که مسلمانا داشتنش دستاویز که بو چنگ میزدن ایمان به الله و رسول صلی الله علیه و سلام بود و متمسک به فرهنگ اسلامی خود بودم لوینو ها میره در کرده بود در رایی برایش لویس تاسیه برش, لوی برش میگن لوینو ها میره در کرده بود که ما اگر بتانیم که ازی مدخل داخل شیم، این خیلی برای ما بیحتر است عزی خاطر مالک ابن نبی رحمه اولا از مفکرین جزائر است به یه اشاره میکنه برادران که استعمار قبلزی که به کشور داخل شود داخل شود در اونجا قابلیت استعمار در در مردم پیدا میکنه یعنی ار نفس انسانی تقریبا یعنی مجموعه از مردم پیدا میشن که در وقت قابلیت استعمار پیدا میشن و استعمار هم میفزه ازو خاطر وقتی که استعمار داخل میشه ببین تقریبا 50 سال پیش الجزایر فرانسه تقسیم میکنن تمام کشورهای اسلامی الجزایر پیش فرانسه یو اممانه لیبیا پیش ایتالیا میارن نیساب بنگستان افغانستان مناطق سر از زیر میشن امارات هلندینا در اندونزیو در مالزی امران باز دوباره رو به انگلیسات تسلیم فیلیپین فیلیپین که الله و دغه کشور اسلامی به نام فیلپین که کشور کشور نشورانی است پیدا. نیمه شه جنرال نام جنرال انگلیسی از مانیلا. از و مانیلا تغییر تغیر این اینه تاریخ رو خوب یاد کنین. کشورات تغیر مثل هنگ کشور اکثر کشور که چینار اوردن باره کی باز کشورای استعماری آمد، نظام استعماری چینار دری مناطق اوردن. فل مشهوره د لبنان که با صحبت کنیم که چی نویگ استیمار وګستیمار پلان, پلان داره خصوصا از بعضی توایف که به اسلام منسوب است نه جنا پلان در افغانستان استفاده می‌شود مسئله خیلی خطرناک کشه چیست اینا برادران دانستن که قابلیت استمار در ما پیدا کنه امروز ما شما چه حالت داریم اکثر مسلمانان ببینید که از همه فرهنگ غربی ما متاثر هستین ما با دشمنه که می‌خواهیم بجنگیم ما از دشمن متاثر هستیم از فرهنگش متاثر هستیم حتی از غذاهایش متاثر هستیم از نشست و برخاست متأثر استی، مزلفاتش متاثر استی، از همه چیز متاثر استی. بلکه یورا ما با خود بر خود برتر می‌دانیم. بايد تو دشمن اگر ما در جنگ در خورشید شکست نصیب ما نصیب باز نصیب آدشت خب آره سوال به اینجی پیدا میشه که شکست در بر ما پیدا شد. می‌بینیم صحابه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم شد، رسول الله از آن دلگذری خشک. از بدوکترین مرکب شان شو تربت گباتش مخی بودند. وساحبی که دور پیش رسول صلی الله علیه و آله تربیت شدن اونا از نگاه مادی غنی نبودن از نگاه تمدن مادی خود در عین زمان در یک وقت در جهان که بود دو امپراتور در مسابقه بودن یکی رومیا یکی ایرانی ها و پارسیا که برش می نگن خود در این شک نبود تمدن مادی در حدی بود که خود رسته بود چرا امی صحابی که از مو دشت بیابان بیرون میشه چره ابن عامر وقتی که میره پیش رستم برای میگه ما الله عزوجل لقد ابتعفن الله الله ذلما را فرستاده که ما شماره را چی کنیم از جور ادیان از تنگی دنیا شما را بیرون کنیم بعد الاسلام و فراخنائی آخرت شما را بیرون کنیم ما الله میبین از هیچ و مزار مادی مطلقا متحصر نمیشه صحابی چرا بخاطر دنونج است استعلاح ایمانی بود انسان شعور, شعور ایمانی داشت برداری ایمانی ویا من ایش اساس بر که فلان در جواب حداژورات میجنگن برادرای مواجهت با اینکه شخص باید مواجهت باید باشه آر مسلمان جهاد ایس که باید صفاتی که مسلمان باید باشه یه باید داشته باشیم نایس اصل ما با دشمنیک فلان میجنگیم اونا وای ما هیچ برتری مطلق ندارن اتاز نگایید ما دیوایم برتری ندارن دشمنای رک الله عزوجل جم راست از نوع گفته باشه. دشمنا همارا كتيرا هدايات نشان انا جواشا بجحنمه صلى الله عليه وسلم تعذيب ميكنا بس باعت ما معفلن مواجهة ستنم انا دشمنا هم الله ورسول صلى الله عليه وسلم بس انا بلاي برت... ما انا چه داشتنمشن كبلاي احساس برطاري باعت ميكنا بس بزرگترين مشكل ما برادارا بود كي ما اس فرحنگ غيربي متاثير سلين امت اسلامي در حديث رسول صلى الله عليه وسلم است كي لتتبعون سنن من كان قبلكم س از مردومای پیشین، اومتهای پیشین شما چی میکنین؟ پیرووی میکنین. حتی با شکلی که مثل که شوشمار وقت در غار دوخل مشدن مغار، در اون جای تن، شما هم دامه خواندونی داخل شوین. صحابه گفتن که کی از یهود باشن و نصاریان، ما خودا هم تا پیو باشون اونرا پس ما بیرن ما استحسر از یهود و مشکل ما در این جهه کا شد. یک منایشاسیت بده برادران که بشما بوید منایشاسیل بوید باشه که ما، نرأسل بوید باشیم که ما بوید اسلامو افتخار داشته باشیم، ما باید مباهات بوید کنیم. ما باید چی باشیم باید برتر باشیم در غزوات رسول صلی الله علیه و آله میبینن بعضی وقتا مراحل شکست مادی میآید اما هیچ وقت مسلمان به نیست که تسلیم کنه میبین در وقت احد وقتی که شکست رخ در مرحله دوم که وقت شکست رخ میده ابو سفیان وقتی که میخه به رسول صلی الله علیه و آله گفت گو کنه عمر و خطاب منیس و شید قرار میگیرن میانشون اساسا به روش میگم ابو سفیان میگه است این در بادر ما شکست خورده بودیم در احد شما که قطلانه و قطلاكم النار. الحرب و سجال رسول الله حرب کس سجال است؟ جای ما برند میشیم جایش باشین داشته باشین که حرب نیز جن. ای سجال است رسول الله ما گای ما احتمال گه اونا بگرین گه ما بین گه ما کوشتاوه چه گه ما کوشتاوه باشه این ابتلاس طرف الله عز وجل به خاطر تمحیص صفوف پاک رسول صلی الله علیه و آله میگه قاتلانا فی الجنه کوشتایم ما در جنت اس و قطلاکو فنار کوشتاه در جهنم است این فرق میان ما است بلکه اصلی ما است که ما درین ما و شما این شما به ما به ارتباط برادران ولا وبراكس احتمال الرسوبات خيل زياد شده باشه و سابق برادران صوبات قادر مستوی سرباز برادرای دیگه و ما سال افتومس حتى ما بيحسن گدگه بي حاجت شايت نشكيه الا من ايس التذكير ارتباط ولا و براكش و منايش التذكير او در اصل اميه ترادله كي ماي مساله يعني در بين حسين کساي كي در بين امتي اسلامي حسين كه افغانستان بخش امتي اسلامي سوال بي پيدانش كو ولا من یک چیز قطعی و از مسلمات باید پیش شما باید باشه قضیه دی والا و برا ما میخوام می شهبهه امروز کشبک به شکلی به شکلی دقیق صحبت کنیم من کمین شکلی میتر صحبت کنیم قضیه والا و برا کی در ذهن برادرای ترسیخ شه و قضیه که والا و برا یعنی چی ان به شکل علمی که صحبت شه و خوبتر است که که خوب به این چیزا توجه باید داشته باشن منای ساده اگر ما به به شکل علمی وقتی که والا و برا مورد خانش قرار دیگه نمیشه که ما شبهات نمیتونه باز کارگر بشه اید نه و شبهه و آره شبهه را باز ما شما میتونید که خوبی باز چیکونن پس بر روی کسی که شبهه انداز است یا شبهه در دروش باز دوباره باید بزنین ما منافقین مثلا بعضی کسا مثلا میخوان شعر مورس بشاره کرد گویا اردو ملی کافر نیست گفتید عالمای واکنش میگذاریم اردو ملی طاغوت همه گیر واکنش ما من ایس اصل و اساس ثبت میکنه که والا برادر در یعنی چی والا برای متعلق به ایمان است یا به امور مستحب و نوافل است این اي با ایمان چی پیوند و چی دارم این میگه صحبت میکنه یک دیگر وقتی که ما از والا صحبت میکنیم آی والا مکفر است یعنی یعنی که انسان کافر میسازه کدام شرط داره مظاهر والا چی است ببین مونس این فرمول در ریاضی مثلا مجموع ما شما فرمول داریم وقتی که فرمول ما به کسی بتیم بیامو زنیم دیگه باز هر نوع معادله ریاضی میتونه حل کنه دیگه باز مشکل نیست مسبطر و منفی منفیز. منفی است منفی در منفی مثبت است متضاد ان و مثبت است من هیچ فرمولی داشته باشه به وجود ترین برادر مشکل امامیاست که میشه علما ایشو مشاهده میکنیم یا بعض وقت مردم علما ایشو نیستن مشکل با این مسائل مشکل دارن از خود آدم میش کوشش میکنین بعد از شبهات فلان چرا کافر میگی تو این چرا کافر است فلان مثلا نماز میخونه فلان روزه میگیره حجم میکنه واقعا هم میکنن واقعا مثلا نمی میکنن. حالا من بخیر مرد براش قبلنگ ولا ورا در کجا با ایمان پیوند داره اصل برادرامی هست من اصل اصل در نماز یخص نحله سنت از احرس سنت, سنت جماعت ما وقتی برادر احرس سنت جماعت میگیم ما مقصد ما این نیست که بازگشان میگیم نا سرت اجرایی میگن خصوصا نی لب در پاکستان خیلی رواج داره ما مجبور هستیم به خاطر وقتی ما احرس سنت جماعت ما زاحل بداهت و چی شی و ی احرس بداهت ما مخر مشارک ما احرس بداهت از بعض برادر متاسفانه متاسفانه متاسف انا متاسف ما کوشش کردن در بعض مسائل نماز رو زکات حج کلهگی مشهور ساختن در حالی که نیست اصل بیات داشته باشه ما وقتی که اهل بدات میگیم می بعضی منافقین داخل دا میشن چور به خاطر وصولشان این وصول, وصول مشکلی داره یا در ولو برام اشاره میکنم که پیش از این مردان منافقین چینه وصول وجود داره اولین قضیه که برادر به یاد اولین قضیه که در اختلاف و ماترخ می بعد از قضیه قضا و قدر کادیس اولین حدیث مسلم که است در واق قضا و قدر است درون مشتبه رخ می اولین قضیه خیلی خطرناکی که امت به تقسیم میشه به فرقای مختلف تقسیم میشه اولین قضیه که در اختلاف در مو او وقت اول رحمت قضیه ایمان است اختلاف رحمت است اولین کسایی که از قضیه ایمان انحراف میکن خوارج هستند دومین فرقی که از قضیه ایمان انحراف میکن کنند مرجعه در نو وسط اهل سنت باقی میماند بس عقیده خوارج شیست؟ است عقیده مرجعه چی است عقیده اهل سنت چی است ببیناره مجاهدین از طرف علمای شو و طرف اسلام و کافر فرند در کابل است ولی که نزامای کدری کشورا وجود داره مطمئن شویم که نه تکفیری است نه خاورنام مردم تکفیر میکن حالا ما شوبد میکنیم که است تکفیر چیه؟ آیا تکفیر دو زدن دین ما هست یا نیست؟ آیا اطلاق لب ز تکفیر برای تکفیری است یا لب است یعنی یه میخ مورد خبر خاورتی با شکل علمی؟ ان شاء الله خوارج اقیده خوارج برادر درباره ایمانی است کونا میگن ایمان کس یه واحد است. کُتله واحد از ایمان میگنین ومت کُتله واحد اس نمیشه که اگر یک جزءش کشیده شوه دقیچ میکنی از بین میره خلاص میشه دیگه ما اطلاق لفظ ایمان بالای صورت نمیکرن چیا نه قبر متوجه توجه بشین قضیه علمی است اگر این قضیه درد نشه بازم باقی باقیه ما لخو متوجه باشه، خوارج به هستن که جزء از ایمان دور شوه کل ایمان از باین میره دلیل بعضی آیات قران دلیل میگیرن آی از بجنازم و تشابهات اسویشان درالک دلیلی جز انمیتنا از جهت خوارج می است که من منس مختصر و مشکل ما سری اصل تمرکز ما بر است قداه السند واجب اونها به می هستند که مرتکب کبیره کس کافر است یعنی کسی که مرتکب جنا میشان کسی که مثلا زکات نمی پردازه کسی که مثلا چیزی که مرتکب کبیره است نمی میشان کافر است یعنی کسی مجرد که مرتکب کبیره شد، مثلا غیبت کرد کافر شد. از اسلام بران دری تهبین ماج اختلافات چون خیل زیات بازیکشان یو پاپشاری کرد کافر زاگرنا شود نہ کټې ای مشکل خوارج بود. طبيعس بایی کار خوارج, بای خوارج, خوارج با یخیده شان یک نفر از امت هم چی نشود حتی دایرک کفر دار نجات پیدا نکرد، همه کافر شدند، علیل تکفیر کړي دن ماور تکفیر کړي عمرو بن نوس تکفیر کړه مده اکثر صحابه تکفیر کړي دن در مقابل مشکل به پیداشت کی خوارجک بدأت در ایمان آورل ویمین آقای دید خاور آیا شما کدام مجاهده پیدا کردین که کسی بگه غیبت که او کافر شد؟ کدام مجازی از ویچیز؟ ودیگر چه قاید خاور که بردم متعام به یچیز می‌رسند؟ این به دید خوارج در مقابل تایید گی پیدا شد به این خاطر که بدات جواب بدن و امت استکفیر نجات بدن. متاسفانه مشکلشان یه پیدا شد که بدات با وبدات جواب دادن. یه مشابه با داشت باشند. ما با سنت جواب می‌دیم. بدات هم با سنت جواب می‌دیم. کفر بیبینن با اسلام جواب میدیم ما. کفر با اسلام جواب داده میشه؟ کفر با کفر جواب داده نمیشه که ما بگن در پارلمان میشیم. در پارلمان میشیم در کافر میشیم در داخل پارلمان. بل در اونجا چی اسلام میزنم؟ یه زیباس. که کفر با کفر جواب داده شد ما کفر میخوایم با اسلام جواب بیم. مشکل مرجعی بی بد وقت کی نخواستن کفر با ای بدعت جواب بدن بدعت با بدعت جواب دادن. چی گفتن؟ گفتن که ما به این نیستیم که ایمان سیاسی ایمان کوتله واحد است. خو اعمال کس جو ایمان نیست اعمال جو ایمان نیست مرجع فرقای مختلف دارند بعدشان میگن تنها ایمان کس تذیخ قلبی است اتا زبان ضرور نیست که اگر کلمه خواندی خوب اگر نخواندی کدام گفت نیست یعنی به این قول خوارج به این قول مرجع ابو طالب مسلمان است در حالی که قرآن نیر رد میکنند قرآن نیر رد میکنه به این قول مرجع کس فرعون مسلمان است به قدر که فرآن که بود در قلب خود تمام یقین داشتند استنق استقامت ها قلوب هم اما قلب ها به وی چی به یقین داشتن خود در زبان کار میکردن بعضی مرجع به که ام خوبترین فرقیش شامی است میگن که تصدیق بالقلب و اقرار زبان اعمال کس هیچ مربوط به ایمان نمیشه توی عمل مربوط به این نمیشه میگن که هر نوع عمل را که انسان انجام میده اگر کسی نماز بخونه روزه نگرفت حاج نکنه هیچ چیز نکرد فقد د په ایمان دا نرم په قلب وکړم په زمانه خلاص کړه ای زحله جنان پس ایمان ازې ایمان میکائیل جبرئیل یکست ابن شما تصور کولین د رسول صلى الله عليه وسلم میره او رسول صلی الله علیه وسلم افکار افتراست وظیفت رازی رسول الله عليه وسلم ما به تو ایمان اوردم او قران ایمان اوردم دارم دین ته دارم خو نماز نمی خوانم روزه نمی گیرم حج نمیکنم با دشمنان ایتم میگم شما رایت میگم را دوست دارم شما چی میگه فکر میگویند اصلا ایمان نمی پذیرفت اطلاق ایمان نمی پذیرفت اینو کفر است صحابی رسول صلی الله علیه و سلم کسی که نماز و جماعت نمیخوان ما گمان بد گمان نفاق سرش می که منافق است که چقدر و جماعت نمی نفر مطلق نماز تر که من مسلمان هستم اینو یسند مشکل مردیه و خوارج به این بود که نا مثال عقلی می دادن مثال عقلیشون به این بود اونها میگفتن که مثلا ایمان یک کتله واحد است یک دو سه تا ده مثلا میگفتن عدد ده وقتی که عدد ده را شما میگی یکش کم کنیم چند میمانند؟ نو میمانند آیا نو ده است میگفتن نیست خبرت نمی میگفتن وقتی که ما از ایمان رو بکاهیم از ایمان چیز کاسته شود آیا ای ده که نو شود ما گفتم می است میگفتن نیست. یبین دیمه راフラー ردی بشو جالب دارم میگه که میگه شما اشتباه کردین اشتباه شما بگی مثلا درخه شما مشاهده کن درخته یک شاختی درخته بکنین آیا نام درخت درخته یا بده چیز دیگه نامش درخ چمیشه در درخت نامش درخته دیگه بیا اتس نگاه ماشاءالله عقلیک است اینا مدره خوب عقیده اهل سنت بس چی است به ایجاد نمیشه ما برادران بودکترین مشکلت فلان مواجهه هستی مشکل ارجاعی است. منافقین نیست اینا اصل اهل بدعت هستند ما متاسفونم بعضی برادران ما خسن بعضی کسایی که در مسائل چی هستند عکس در مسائل نماز و زکات محصول ساختم در حالی که اصل جنگ با این مردم است با مردمی که بر ما میگن که مردم نظام به این خاطر کافر نیست به خاطر اینا میگن ما باشان با نشستیم ما به کس نشسته بودیم برای ما خودش گفت ما کارده به خاطر کافر گفته نمی که باید قاضی باشه کی مفتی باشه یه قاضی مفتی باز کرده او رو محکمه باز درون کارده زبان خود که ما کافر هستم دګنه مې قاضی مفتی چې وا خاط پیدا شوه قاضی مفتی یې نشینم دای انګان درکې په امامه و دغه قاضی مفتی اه. خب آل سوال به اینجا پیدا میشه چې په ازقیده اهل سنت جماعتز مې نه خوب را درو باشه اهل سنت جماعت کس با مرجه و چی مخالفتسته با خوارج څه راقیده سنت جماعت مې مې ما بنوچو قرآنې ایمان داریم مشکل اهل بدات مې شب را در بدات یا کریم موافق میشه اهل سنت به این نیست تناله سنت به این است ان ما تلاوت میکنیم تدبر میکنیم آیات و سنت رسول صلی الله علیه و سلم این بر ما خورش قاعده است نه قایده پیش خود گذاشتن باز رفتن لی و عناق کردن آیات گردنش خم کردن که موافق با اصول مادارال قران هیچ وقت موافق با باطل نمیشه اما میشه با تحریف با تحریف معانی قرآن کریم که ناگوش میدار قران کریم و چیکو بگردن موفق با اصول بدی خود بگردن. اهل سنت برادران و این است که الرسول جماعت بیاستن که ایمان کیست؟ ایمان. خوب بذار اوجی باشن برادران. ایمان کیست؟ دریشک نیست که تزیق بالقلب است و الاقرار باللسان است و عمل بالجواری است. خوب بیحترین تعریفی نه ایمان که قراره ما ایشلاف تعبیری کن نمیاس که است. قراره ما تعبیری کن نمیاس قراره ما قول و عمل. هم عم قول است و هم عم عم عمل است. یه زید ام هم کس. اضافه میشه اما از او کاسته میشه. خب آره سوال میشه پیدا میشه که یعنی چی نوام؟ ولی ما اهل شنید که ایمان که از ایمان. باسی بخش تفسیر میشه دانسته اهل سنت روز جمعات. نه به اون شکل که خوارج آمیج اعمال آورده بودن مورد رکن ایمان طریق. نه که موردیه آمیج اعمال کشیده بوده. اعمال که است در مربوط به ایمان که میشه باسی بخش میشه. ایمان باسی بخش است. یکی اصل ایمان است. یکی ایمان واجب است. یکی ایمان مستحب است. بعضی اعمال کس مربوط با اصل ایمان میشه. بازی اعمال کس مربوط به واجبات ایمان میشه. بعضی اعمال کس مربوط به مستحبات ایمان میشه. نه خوارج که میگه اعمال آورده بدن رکن ایمان جور کرده بدن نه مرجعه کم اعمال کشیدن. علل سنت ببینین نه خیلی آیات داری در است. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلام حدیث شعاب الایمان امام بیهقی راه مولا کتاب داره در فارسی ترجمه شده بشه در ترجمه باشه. ازون میشه برادر استفاده در باره شعاب الایمان رساله خیلی خرد است. رسولان در حدیث میگه ایمان کس شستو چن شو باز شستو چن بخش ایمان ببین همه توجیب باشه میگه اولها کلمت لا اله الا الله اولش لا ایلاه ایلا الله آخرش است اماتت الأذان الطريق دور کردند از یه تازه مردم و الحیا شو بتونه ایمان حیام کس اگر بخش ایمان است آقا داریم سوال پیدا میشینی از اونا اگر کسی لا اله الا الله نجف کافر میشه نیشه کسی از یک از رای مردم دور نکرد کافر میشه نمیشه پس ای خوارج یا ای مرجئه حال سوال متوجس ما هست کی ببینن که رسواسن وقتی که ایمان تقسیم میکنه به اعماله به شعبات تقسیم میشه به بخشات تقسیم میکنه ادارت ببین میکنه که هر عمل در یک جای از ایمان پیوان میخواه خب ار احمد چی است تقسیم خوارج تقسیم اهل سنت و جماعت کی بعضی ایمان کس مربوط به اصل ایمان میشه بعضی اعمال بعضی مربوط به جبردار مستحباتی مال. خوب آلمی سر مستحبات صبرت میکنیم. عملی که برادرم مرتب مرتبه دم مس مستحبات ایمان خب میشودارو دارو. اگر کسی کرد الله بر شجر اگر کسی نکرد به خاطر نیه. عادی نمیکنه. به ایمان داره بود. استخفاف استهزار و کفر دارید شک نیست. اگر کسی مثلا عمل مستحب انجام نداد کافر خونه میشه. حتی گناهکارم نیست. حتی گناهکارم نیست. قر اعمال خیلی در اعمال مستحبه اعمال مستحبه در نماز داریم در روزه داریم در زکات داریم در اعمال مستحبه خیلی زیاد است خیلی اعمال مستحب است هو بر کسی ایمان داره به اعمال مستحب اما اعمال مستحب انجام دادو کافر نمیشه خاطر که مربوط به مستحبات ایمان است و نه معذور گناهکار رسم میشه و آرمی هم سره واجبات ایمان در واجبات ایمان که برادرها دو قسم فعل است در اصل ایمان دو قسم فعل است بعضی افعالش که تو مکلف بیستی که باید کارا نکنی و بعضی اعمال است که مکلف بیسگه باید کارا باید کنی چی نمواد مثلا بگونیم مثال اعمالی که ما مکلف هستیم در واجبات ایمانی کار کنیم بر الوالدین احسان با والدین احسان به همسایه حقوق دوستش ناختن حتی اکرام ضیفه جمله واجبات ادو لا مدر واجبات مستحب در واجبات را داخل میکن که حتی سی روز میمون حق, حق واجبی است ببین این اعمال است که ما مکلف به کار هستیم واییت کارا واجبات ایمانی است خب اگر کسی می متخلف میشه از واجبات عمل واجب سرش سرچ مکالف مکالف میشه کمی واجب انجام میده مثلا برو والدین اگر کسی نیکی به والدین خود نکرد کافر میشونه میشن نه میشام گناهکار است فاشق است فاجر است اما کافر نمیشه ما مکلفه بعضی امور هستین گودرون نکنیم مثلا شراب باید نخوریم زنا باید نکنیم غیبت باید نکنیم نمیمه باید نمون باید نباشیم میشن چینی خیلی جار است گناهی است اینا همه که مربوط به واجبات ایمان میشه ما, ما مکلف هستیم این کارو نکنیم ولی کارو کردیم کافر نمیشیم اگه دفر شراب می حتی مسرس پافشاری میکنه شراب مینوشه. می نوشه به شراب نوشی است کافر نمیشیم کافر نمیشیم خب آلی سوال به پیدا فایده می در واجبات ایمان چی وقت کسی کافر میشه. شود برادران متوجه باشین در واجبات یومان وقتی کسی کافر میشه که عمل را انجام میده و او را حلال می شراب می نوشه می ربا می خوره میگه حلال است. جاستهزام میکنه. بیر الوالدین نمیکنه. و این میگه بیر الوالدان مطلقاً یک چیز یک چیز میگه یی در قران میگه در سنت مطلقاً ما بمکلف میگنشت. در واجبات ایمان کس در این استحلال یعنی حلال دانستن یا جهاد استیلال میشه برادران در شامل میشه در داخل میشه استیلال لای که حرام باشه دور حلال بکنه. در جهود به معنی انکار است انکار به این معنی که از محرمات است مثل زنا ایرجت میکنه آدم انکار میکنه مطلقا یعنی اعمالی که مربوط به واجبات ایمان میشه در این عقیده شرط است در این بوره سه عقیده شرط است شیر خود برادرها باشی اعمالی که مربوط به واجبات ایمان میشه در این عقیده شرط است عقیده باید باشه در این تفصیل میخواد که بس فسان میشه که در سوال برادر صاحب دی بعضی مشکلات دی وجود داره که باز بعضی چیز است میشه برادر, سوالا بازی بازی برادر خود نوت کنه ولی ما با فسان صحبت میکنیم در سوال ها نمیدن قضیه اصل ایمان اصل ایمان به نقطه جنگ میان ما و میان منافقین مرتدین علمای صلु اصل ایمان است اعمالی که مربوط به اصل ایمان میشه برادره اعمالی که مربوط به اصل ایمان میشه مثل چی؟ درین دو قسم اعمال است اعمالی است که ما میکلافت هستم کنیم و اعمالی که ما میکلافت هستم خیلو نکنیم اله اعمالی که ما مکلف هستیم کوره باید کنیم چیست؟ است تعظیم الله عزوجل تعظیم رسول صلی الله علیه و سلم که اعمالی است مت بر علیه سلام باید به شما معظم است تعظیم شعائر الله است اگر استخفاف شود قراره استهزاء شود قراره و یک مستحبات انسان کافر می‌شود درو جمله حاکمیت از قاضی تا حاکم که کسب حاکم قاضی باید به قرآن کریم باید فایسله کنه قرآن باید مصدر اصلی و اولی و آخریش در حل و فصل نزاعات باید باشه در امور اجتماعی اقتصادی قضی ولا با اصل ایمان مرتبط است و ما تلاوت نکنه با اصل حال سوال به پیدا میشه ما خب که دری شرط است دری براداره شرط همی است اگر کسی غیر از قرآن حکم کرد و فیصله کرد ولو که متقد به قرآن باشه در اعمالی که مربوط به اصل ایمان باشه در عقیده شرط نیست. این کلان مشکل ما و مشکل اهل بدعت‌ها اکثر منافقین جور شدند. و مرتدین شدن و این چیزها برداشت داشتوا شما که مربوط به اصل ایمان می بشه دری عقیده شرط نیست. و احتمال هم داره که دیگه بخشای ایمان در تو باشه خود تو اصل ایمان تا خراب احتمال داره تو نماز بخانی احتمال داره تو روزه بگیری، احتمال داره توحید کنی، احتمال داره ریش کلان داشته باشی، احتمال داره با چه ایزار تنمان کوتاه باشه مطابق با سنت رسول ستن. احتمال داره مسواک خیلی بزرگ کلان داشته باشی، همه چیزت موافق با سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشه. اما اصل ایمان خراب کرده، ریشه نداری، آدم بی‌ریشه هستی. این مسلمون منافق میمانه، مسلمو درخت میمانه که در ظاهر خیلی چی منظر خیلی زیبا داره. منظر به سفر و داره به هیچ رو است تراوت بخش از منظرش خیلی میبینم برگای سبز داره شاخچاش فکر میکنین که حال شاخچاش با آسمون کشاونده شده اما در حالی که بعد از یک ما مشاهده ما مشاهده میکن کم همه خشکی میخوش که وزبن میره و خلاص میشه